بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین، اما بعد ما تا درس کزشته یکی از کار السفتاح رو داشتیم، السفتاح نماز، دعای السفتاح همون دعایی که میان تکبیر اولی، تکبیرت الاحرام و سوره فاتحه خوندی میشه در سر نماز، ما کار به مسائل فرخیش نداریم و بعضی ها گفتن واجبه مثل بنبته و بعضی ها گفتن مستحبه و بعضی ها هم گفتن مکروهه بعضی ها جایز ندونستن مثل ما مالک خب صحیح و ثابت از رسول الله صلی الله علیه وسلم که دعاهای متعددی را یاد کردن قبل از شروع سوره فاتحه چه در نماز فرض و چه در نماز سنت نافله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاهای مختلف و متفاوتی وارد شده ازش که میخوندن و سنت که ما هر گاهی یکی از اون دعاها را بخونیم چه در نماز فرض چه در نماز نفر اولین دعایی که ما گفتیم الله اکبر کبیره و والحمد لله کثیره و سبحان الله بکرتن و اصیله که درش تکبیره و درش حمد و ستایش الله، و درش تسبیح الهی. این ستا ذکر خلاصه قرآنه چکیده قرآنه چکیده نماز اولش تکبیره، الله اکبر بعدش حمد و سنه هست، سوریه فاتحه که در هر رکاعت تکرار میشه و بعدم در سجده و در رکوع تسبیح و الله سبحان ربی العلا و بحمد و سبحان ربی العظیم و بحمد تسویحات الهیه بس نماز روی این سطا ورد و ذکر میچرخه تکبیر، تحمید و تسبیح تکبیر الله اکبر تحمید الحمد لله و تسبیح سبحان الله اساس نماز رو اینه کسی که نمیتونه نماز بکنه سوری فاتحه ولادت نیست کافیه که در نمازش بگه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر نمازش ادا میشه کسی که بلد نیست نمیتونه قرآن بکنه چون اساس قرآن و اساس ذکر و ورد این سه ذکره اولیش تکبیر که لازمه تکبیرم توحیده لازمه تکبیر توحید لا اله الا الله من شاء تکبیر است توحید الوهیه کسی که الله را به قبول نکرده نمیتونه الله را در زندگیش بزرگ ببینه بزرگتر از همه چیز برتر و والا از همه چیز نمیتونه لازمه توحید تکبیر و لازمه تسبیح تحمیده اینها ملازم هم با هم سبحان رب العظیم و بحمد سبحان و الاعلى وبحمد یا در این دوومین ذکری که داریم در دعای استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تسبیح و تحمید چه معنایی با هم دیگه پیدا میکنن وقتی که این دو تا ذکر با هم دیگه میآوند باید اون مطالبی که گفته شد در اون جلسات گذشته کنار هم دیگه بذاریم تا نتیجه گیری بکنیم بفهمیم که الله جل شانه در تشریع از کار از ما چی خواسته که بیاده چی باشیم این ذکر را رسول الله صلی الله علیه و سلم چه البانی تحصیح میکنه روایتش که در بعضی سرخش هم ضعف است ولی خب مجموع طرقش صحیح است خطاب رضی الله عنه این ذکر بلند میگفتن سر نماز ثابت از عمر بن خطاب صحیح که ان ذکرا بلند میگفتن تسبیحات ربولان میگفتن سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك بلان میگفتن که بقیه بشنوه و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هر از بعضی از اذکار بلند میگفت برای اینکه صحابه یاد بگیرن عمر خطاب رضی الله عنه اینجا هم بلند گفتن تا اینکه اصحاب بیاموزن چنانچه عمر بن خطاب و دیگر اصحاب حتی تحیاتم هم تو بر سر بر میخوندن بلند تا دیگران بیاموزن همچنین اینجای در نماز جنازه وارد شده که اصحاب مثل ابن عباس رضی الله عنهما جهری می‌خوندن تا اینکه صحابه بدونن یا تازه ها بدونن که چگونه باید این نماز خونده بشه پس از باب تعلیم بوده سبحانك اللهم و بحمدك سبحانك اللهم و وبحمدك گفتیم تسبیح یعنی تنزیه تسبیح اصل تسبیح کلمه تسبیح سبحه و سبح تسبیحا پای گرفته شده معنای دوری و بعد به معنای شنا هم میاد كل في فلك اینجا به معنای تنزیه و برد و دوری الله از هر گونه نقص و عیبی اساس توحید کلمه توحید لا اله الا الله دو تا رکنه تسبیح تنزیه و پاکسازی الله از هر گونه عیب و نفسی و اثبات تحمید اثبات صفات لایق و شایسته برای الله جل شانه این دو لا اله نفی الا الله اثباته اساس توحیدین توحید توحید درک می‌چرخه تسبیح و تحمید نف و اثبات نیست که هی شیء و هو السمیع البصیر در اسماء و صفات هیچ چیزی مثل الله نیست و هو السمیع البصیر الله مش نماد می‌بینند نفی از مشابهت مخلوقی با الله و اثبات صفات لایق و شایسته برای الله در عبودیت و بندگی در توحید الوهیت و عبادت توحید عملی در اون چیزی که به اعمال ما برمیگرده و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله اثبات واجتنبوا الطاغوت نفي وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اثبات بس اساس توحيد نفي و اثبات چه در توحيد علمیش برمیگرده به اسماء و صفات و ربوبیت الهی و چه در توحید عملی که به اعمال ما برمیگرده الله یک تاست معبود یک تاست الله یک طرفش خداشناسی یک طرفش یک تا بسی این اساس توحیده سبحانکاللهم بارلاها تو پاک و منزهی از هر گونه عیب و نقص عیب از اون صفات زشت کردار نادرست رفتار ناپسند الله ازش منزهه الله هیچ کار بیهودهی انجام نمیده الله هیچ و خسته نمیشه ما مستن من لغو مقابل آفرینش الله میگه من خسته نشده لا تاخذه سنه ولا نوم نچرت میزنه نمیخوابه هر گونه صفات عیب و زشت و صفات نقص الله ازش مبراست پاک صفات نقص کور بودن ناشنیدن لال بودن چنانچه ابراهیم بر پدرش ایراد میگیره ای پدر چرا خدایانی میپرستی که نمیبینند و نمیشنوند عیب نقص کسی که نقص داره مستحق پرستش نیست بس اثبات صفات کمال در تنزیه لازمه تصویح لازمه پاک ساختن الله از هر عیب و نقصی اثبات ضدش اثبات کماله همون حمد و ستایش کامل بودن الله تو کاملی چه در شنیدنه چه در دیدنه چه در ارادت چه در قدرت چه در لطش چه در رحم در همه چیز اون صفات نیک بار الله صفات کماله نقصی درش نیست پس سبحانك اللهم و نوکنید اینجا ستا خصوصیت های الهی در این حدیث یاد شده تا پایه از پایه بایی های وحدانیت الهی که الله فقط شایسته اون اوصافه یکی تصویح الله هم بحمده بعد یکی بعدیش و تبارک اسم ربک و تبارک اسمو بحث برکت الهی و تعال جدو نوکنید متبارک بودن الله جل و متعالی بودنش و سبحان بودنش این ستا اوصاف خاص الهیه هیچ احدی جزء الله به این اوصاف شایسته نیست هممون هر کسی الله فریده یک عیبی درش هست مخلوقه الله یک عیبی یک نقصی درش گذاشته به خاطر اینکه به حاجتش پی ببره نسبت به الله الله غنی هست الله متکبره صاحب کبریا هست الله صاحب کبریا هست چنانچه در جلسه گذاشته داشتیم الله جل شانوگ میگوید و کبریا و کبریای من ردای من لباس من پوشش من جامعه من چرا تشبیه شده به جامعه هرچند که الله محتاج جامعه نیست این جامعه از باب تلازم و ملازمه اومده کبریا ملازم ذات الهی همونطور که انسان با لباس با پوشش میره بیرون و لباس به تن چسبیده از باب خصوصیت الله به این وصف الله میگه کبریا و کبر از صفات من هیچ مخلوقی جایز نیست این صفت رو به خودش میگیره ملازم خاص الله اگر کسی متکبر بشه عذابش میدن همونطور که در حدیث صحیح مسلم داشتیم ابلیس الله در وصفش میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین ابا واستکبر استکبار و تکبر زد کبر چیه غمت الناس و سفه الحق و در روایت غمس الناس و بطر الحق غمس الناس غمت الناس یعنی تحقیر مردم خود را برتر از دیگران دیدن کبر دیگران را بر و تمسخر بگیری مسخرشون بکنید کبر دیگران را معبود خودت قرار بدی کاری که فرعون میکرد پولشون اموالشون داراییشون ازشون بگیری بعنوان عبد و برده باشو رفتار بکنی با اسم مالیات به اسم هر چیزی مردم را اسیر خودت بکنی اجیر خودت بکنی که تو را بپرستند از تو تعریف و تمجید بکنن این کبره دیگران را سرکوف بزنی تحقیر بکنی کبره و سفه الحق و بطر الحق در روایت سفه الحق یعنی حق بیاد بیاد از آیه آیه از آیات الهی حدیث از حدیث رسول الله صلی الله علیه بعد میگه که نه به درد جامعه امروز نمیخوره نه نمیشه نه این الان کاربرد نداره کارایی نداره این چیه سفه الحق بطر الحق بهش میگه غیبت نکن میگه میکنم مي دروغ نگو میگم نگاه حرام نکن میگه میکنم مي این چیه سفه الحق بطر الحق این کبره کسی که این صفت کب درش اومد خودبرتر بینی خودپسندی خودپسندی خودبرتر بینی خودبینی خودبرتر بینی برخود تو از دیگران برتر ببینی خودبینی این که رأی خودت را بالاتر از شرع الهی بدونی از قرآن و سنت بدونی این خودبینیه عقل خودت را برتر از نصوص شریعت بدونی این کبره الله جلدشان رو میگه منم فقط که متکبرم کبریا از آن منه کسی اومد این وصف را به خودش گرفت از وصف خاص من عذابش میدم کسی اومد خودش رو برتر دید از شریعت الهی حق را رد کرد عقل خودش را برتر دونست این شخص چیه؟ مستحق عقوبت و عذاب الهی بس اینجا تا لفظ در حدیث برای الله به کار برده شده که مختص الله جل شنه تسبیح به یکی متبارک بودن الله یک سبحان بودن الله و دیگری هم متعالی بودن الله که تک تک اینها ان شاء الله به در اینجا ما تسبیح داریم. اینجا ذک خیلی خلاصه است. سبحانك الله وبحمده. شرحش را ان شاء الله مفصل تر این در دعای وجهد خایم خون. و وجل الذي فطر السماوات والارض. اونجا این لفظ تسبیح ما شرحش را از زبان رسول اساس هم خایم خون در دعای وجهدی که در صحیح مسلم ماج. چون ما نیاز داریم که این تسبیح را از وصف خود رسول الله صلی الله علیه و یاد بگیریم که این تسبیح چیه جایی خلاصه اومده جایی شامل اومده تسبیح الله جل جلاله چنانچه گفتیم یعنی منزه ساختن الله از هر گونه ناپاکی و نادرستی و بدی تسبیح و تحمید اثبات صفات کمال برای الله جل جلاله الله محمود و حمیده الله محمود و حمید, حمید. مستحق حمد و به حمدک بار له تو مستحق حمدی حمد زد زم بدیه نادرستیه زدشه زد بدی خوبیه حمد یعنی به خوبی یاد کردن حمد یعنی ستودن حمد یعنی ستایش حمد یعنی به نیکی یاد کردن به درستی یاد کردن الله مستحق حمده و محموده به خاطر صفات و خصال نیکش الله در افعالش هیچ وقت بدی نمیاد همونجوری که در دای وجه داریم والخير كله بيديك و شر ليس اليك شر به تو بر نمیگرده بالا شر از مخلوقه نه از خالق الله صفاتش اسماش اسماش همش چیه خیره همش حسن و عز و لله الاسماء الحسنا الله بدی تو ما نداری همش اسمایی نیکه ولل اسماء در کمال نیکی قرار داره اسمای الهی ولله اسماء الحسنا پس الله مستحق حمد به خاطر صفات و خصال نیکش الله محموده و حمیده یعنی مستحق حمد و ستایش ستایش بالاتر از مدح بالاتر از چیه مدح یک خصوصیت داره یک ویژگی داره حمد که در مدح نیست مدح یا به خوبی و زیبایی یاد کردن شاید به شکل شمایل یک شخص بر بگرده چیزی که خودش به دست نیورده مثلا بگیم فلانی سفیده فلانی قد قواره شسان تنومنده احتسابی که نبوده داری چیزی که از خودش نبوده داری تو در اون مدحش میکنی داری خوبیش میگی در ازای اون چیزی که خودش کسبش نکرده بلکه الله بهش عطا نموده مدح درست جای جایی مدح هم در مقابل کردار نیک صورت میگره ولی عامه ولی وقتی گفته میشه حمد حمد خصوصه حمد در مقابل صفات و خصال نیکه در مقابل اون صفاتی که در مقابلش اثر هست الله رحمانه و رحمتو وسعت كل شيء رحمتش هم جفرا گرفته از رحمتش اون قطر آبی که بر روی زمین میباره و اون درخت میرویه از رحمتش اون بچه و نوزادی که الله هدایتش میکنه که چطور شیر مادرش بمکه از رحمتش اینه که چشما رو در جلوی صورتمون قرار داد نه پشت سرمون رحمت چش داد که ما ببینیم رحمت گوش داد که بشنویم رحمت پیامبران فرستاد رحمت و رحمت و سعادت كل الله ستایش میشه به خاطر این خصال و افعال نیک یک سری تفاوت‌ها هست. هر مدحی پس ستایش نیست. بر خلاف ستایش، هر ستایشی مدح است. یعنی وقتی که تو خوبی از الله یاد می‌گیری، حمد الله رو می‌گی، لازمه‌اش اینه که تو داری الله را می‌ستایی، هرچند که این واژه‌ها کلمات عربی معادل دقیقی در لغت فارسی ندارن. یعنی مثلا شما کلمه مدح و کلمه حمد هر دو تا در لغت فارسی در لغت فارسی معادلی داشته باشن که برای هر دوز یاد شده باشه مثل ستایش برای هر دوتا شده برای هر... هم در تعریف مدح گفته میشه ستایش هم در تعریف حمد در صورتی که بینشون عموم خصوصه یک تفاوتی هست خوصا در لغت عربی پس حمد ویژگی الله خاص الله کسی مستحق حمده که هیچ خصلت بدی نداشته باشه برخلاف مدح شاید من تو مدح بشی مستحق حمد نیستیم الله که فقط مستحق حمده به خاطر اینکه تمامی خصالش نیکه تمامی صفاتش نیکه هیچ بدی از الله سر نمیزنه به خاطر همین سوره فاتحه با حمد شد که در هر نمازم هم مکلفین که بخونیم الحمدلله رب العالمین تمامی حمدها با الله برمیگرده اگر مخلوقی هم بشه اون مدحش به حمد الهی برمیگرده الله که اون نعمت را اینچینی در اون شخص قرار داده در اونجا قرار داده اون کسی که اون نعمت رو قرار داده مستحق حمد نه اون مخلوق حالا چه تفاوتی بین حمد و شکر بین حمد و بین مدح گفتی بین شکر و سپاس و ستایش سپاس شکر حمد ستایش بین سپاس و ستایش چه فرقی هست شکر همیشه در مقابل نعمت مقابلی داره یعنی یک کاری را کسی برات انجام میده تو ازش تشکر میکنی این چیه تشکر شکر هر شکری حمد چه در حیث لا ش الله من شکر الناس. کسی که از مردم تشکر نکنه الله را شکر و سپاس گذار نبوده نیست شاکر نیست. کلمه شکر در قرآن زیاد اومده اتاب و سرزنش الهی به بندگانش و قلیل و من ادیشککر. شکر خره شکر گفتیم در ازای عمته. الله گایی از بندگانش داره که شاکر نیستن با اون نمازشون. شاکر نیستن به اون صدقه دادن. شاکر نیستن با اونذ اون یادش. شکر گزار باشن در مقابل اون نعمت یعنی الله به تو نعمت داد روزی داد در مقابل اون روزی سپاسش رو به جا بیاریم الله چش براد روزی کرده حق این چش رو ادا کن حق اون مفاصلت رو ادا کن نماز ظهاو نماز فرض پنجگانه بکن حق اون نعمت هایی که الله بهت ادا کرده ادا بکن شک در ازای اون حق و حقوقه ولی هم نه هم بالاتر از سپاسه. حمد سپاس هم سپاس ستایش الهی بر بر اون تمامی افعال و اوصاف نیکش چه اون وصف مشمول حال ما باشه چه نباشه الله خالقه ما رو خلق کرده لازمش ما داد شاکر اون خالق باشی الله مدبر رزاقه در مقابلش اون روزی که به داده امور تدبیر کرده شبکزار بادش ولی در مقابل حق الوهیتش بر تو بندگیش عظمتش کبریاش جبروتش در مقابل اون باید حمد الله ستایش الله را به جا بیاری. الله را باید به نیکی یاد بکنی. الله باید حزیم بش موری. باید کل نعمت ها را نادیده بگیری. فقط الله را با اون عظمتش بگینی مرتبه احسان ان تعبد الله کانانک را نموسکی مییسی ان انگار الله جلویتی سادت را نگات میکنه. کمال مراقبت الهی رو باید داشته باشی. این چیه؟ این مقام حمد. این مقام حمد. مقام سختی رسیدن به این مقام به این جایگاه اگر کسی میخواد به این جایگاه برسه، چنانچه در جلسه گذشته گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و به اون مقام، مقام حمد مشرف شدن، پرچم داره، حمد شدن در روز آخرت به خاطر چی بود؟ به خاطر عبادتش و پرهیزگاریش. بالاتر از اون چیزی که الله ازش خواسته بود، بالاتر از اون شوق در مقابل اون نعمت، بالاتر از اون الله را میپرسید مرتبه احسان تعبد الله کانک و منهم سابق بالخيرات، سبقت بگیری در کارهای خیر و خوب ثم الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مرتباً إسلام ومنهم مقتصد من رتبة إيمان وإيمان ومنهم سابق بالخيرات مرتباً إحسان سبحانك اللهم وبحمدك بس تسبيح لو الله أسهر دون سفاته عيب ونقص وإثبات الحمد وصفاته خصال نيك الله جل شأنه وتبارك اسمك وتبارك اسمك الله بار لاها اسمه متبارك ببرکت اسمت که ذبیحه حلال میشه قربانی حلال میشه گوسفند مرغ اگر نام الله را نبری بر اون چیزی که سرش میزنی الله بر تو حرام کرد ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه اسم الله یاد نشده حق نداری بخوری اسم الله به برکتش هنگام همبسری و همخوابی و همسرت شیطان نزدیک بچت نمیشه در اما میمونن شر شیطان به هنگام غذا خوردنت با برکت اسم الهی شیطان با تو قضا میخوره با برکت اسم الهی وقتی که به خلا میری جایی که جای شیاطین و جن شیطان از تو فرار میکنه این برکت اسم الهیه و تبارک اسم بار الها اسمت متبارکه اسمت عظیمه اسمت عظیمه بزرگ پر خیر و برکت متبارکه یعنی پر خیر و برکت اصل برکت بروک به معنای پر خیر و برکت بودن یعنی نامت همه چیز را پر خیر و برکت میکنه با نام الله چنان چه ما قبلا در شرح ازکار داشتیم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء و نام الله هر شری نابود میشه بلکه اون نام اون اسم چنانچه الله مستحقشه از دل برایت حق عبودیتش از دل در زندگی ما تطبیق پیدا بکنه نه که بر سر زبان باشه فقط مجرد ادعا باشه الله و اکبر که میگیم در همه چیز باشه همون الله اکبر که گفتیم سر نماز غذا و سخن و آب و نوشیدنی و همه رفاقت و همه چیز کنار میزنی باهاش در زندگی الله بزرگ بشه همه جا را الله ببینیم با خودمون الله را, را رقیب و مراقب خودمون بدونیم ان ربک لبالمرصاد الا علم يعلم بان الله یرا الله را ناظر خودش بدونه در همه کار و همه جا اینجا هست که اون اسم متبارک میشه برای شخص اثر بخش میشه اون اسم ولی که اگر حقوق اون اس را ندونه اوصاف اون کسی که مستحق این اس بوده الله جل شانه اوصافش رو ندونه اون اثری که از زبان اون کسی که عالمه بنسبت به این نام برسر زبان میاره با اون کسی که نمیدان فرم کنه تفاوت داره و تبارک اسم بس الله اسمش پر خیر و برکته و تعالا جدك و تعالا جدوک ای ارتفعت و علت و عظمت ارتفعت و علت باره لا جد یعنی بزرگیت بزرگیت بالاله بالاتر و والاتر و برتر از هر بزرگیه بزرگی در مقابلت وجود نداره اصلا بزرگیت والاتر بالاتر برتر از هر بزرگیه تعالی جدک و تعالی جدک باره لا عظمتت بزرگیت برتر و والاتر از هر بزرگیه علو و ذات اثبات علو ذاتی و عظمت الهی بزرگی الله جل شانه در مقابل هر بزرگی و گفته شده و تعال جدک گفته شده جد به معنای غنا هست و تعال جدک یعنی غنا و بینازید بارلا ها همه نیازمندن و مستحق جستو تو بین نیازی بارلا ها فقط تو متعالی از هر گونه نیازمندی و گفته شده بارلا ها و تعال جدک تو بارله ها متعالی از هر گونه احتیاجی از هر گونه انفاقی از هر گونه نقصی و عیV، تو بالراها متعالی از هر گونه نیازمندی که کسی مثلا بیاد به داد برسه فریاد رسد بشه کمکی بید بکنه یاریت بکنه تو متعالی بالله از هر گونه معینی هر گونه یاوری و گفته شده و تعال جدوک ای حظ و نصیبک، معنی جد معنی در, در لغت عربی این کلمات همه در لغت عربی اومده متعالی شده بالراها یعنی همونطور که ما در رکوع داریم بالامدن از رکوع که این قسمت از ورد گفته میشه یعنی اون کسی که صاحب مکانته منزلته هیچ کسی نسبش جاهش مکانتش به دردش نمیخوره جز اون عملش که به درد بخوره شه اینجا داریم بی معنی جدک ای و تعالی مکانتک جایگاه و مکانت الهی بار الله متعالیه بر همه خلق نامداری در مقابل نام الهی نیست عظيم بزرق در مقابله بزرقي الله وجودنا دره ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك الشيخ عبد المحسن عباك حفظه الله در ترجيحش در شرح سنن نبي داوود در معنوية تعالى جدك يقول وتعالى عظمتك جد معناية عظمته بعد مجيء فالدليل شمس الله جل شأنه السخنات جنيان وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أي تعالَت عظمته الله متعالِيس بأم بزورجياش بزورج بأم عزمته ما اتخذ صاحبة ولا ولدناهم سريقة افترى وقوله لا إله غيرك الله أن آية مفصلة سورة الجن ما قبلنا تر تفسير شرح شتادي. دي جنب نياز نيس كبعوضة شو كوني. ولا إله غيرك قوتيه همون من توحيد عبادته توحيد عملية همون من تسبيح وحمد لا إله نافية وغيرك إثباته إيش معبد نيس جوسته إيش معبد بحق نيس جوسته ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل. هركسي برسيدي مشه سدادة هر هركسي بش روی میارن جز الله متعال نحق حق همه کس هر کسی تعظیم میشه هر کسی بزرگی میشه هر کسی حاجت و نیاز از او خاصه میشه نحق جز الله متعال جز الله متعال ولا إله غيرك و الله على محمد و علی محمد